حکایت پارسایی ای را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد. مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عزواجل علت دوام گفتی. پرسیدم که شکر چه میگویی. گفت شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم. به معصیتی گر مرا زار بکشتند آن یار عزیز تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد گویم از بنده مسکین چگونه گنه شد کو دلا شد از من غم آنم باشد.